صفحه سی آنها البته هرگز از آنچه که در تهران به سر جاوید و پدر و مادرش آمده بود خبر نیافته بودند دونامه جاوید به آنها نرسیده بود و آنها در این تصور بودند که موبد بهرام و خانواده فیروزاقا در تهران ماندگار شده و زندگی کرده بودند جاوید امشب همه داستان مخوف را به پسر عمویش نگفت فقط گفت که بقیه خانواده‌اش و عموی پیرش همه در عرض این مدت مرده بودند خانه آنها در یزد هنوز همانطور خالی مانده بود جاوید درباره خواهرش پرسید به او خبر دادند که خواهرش با شوهر و بچه هایش اکنون در کرمان به سر برند، از اهل خانواده امویش پرسید، دستور مهروند با لبخند به چشمهای جاوید نگاه کرد و گفت، همه خوبند، و افزود که پوران هنوز در انتظار و در مهر و پیوند اوست. جاوید با درد تازه سرش را پایین انداخت، باز سکوت کرد، رنجهای او برای یافتن پدرش و افسانه و درگیری و پیکارش با ملک آرا پایان یافته بود، اما درد سرگذشت غمانگیزش به عنوان یک مرد در این دنیا ادامه داشت و ادامه می‌یافت. بین او و پوران همه چیز بر باد نوشته شده بود. چه جور زندگانی و سرنوشتی را میتوانست در این دنیا به پوران ارائه دهد؟ او یک مرد عقیم، تباه شده، از دست رفته چه داشت؟ آن شب با وجود دعوت و اصرار پسرعمویش به خانه آنها نرفت. به خانه خودشان هم نرفت. گفت دوست دارد همه شب را در آتش کده بماند. دستور مهوند پیش ماند تا سپید دم گفتگو کردند. بامداد روز بعد به منزل خودشان رفت. اته‌ای از دوستان گذشته و جوانهای فامیل را که دور او گرد آمده بودند با خود برد. در خانه را باز کرد، به همه اتاقها سر زد، همه جا را نگاه کرد. خانه و اساس درست همان گونه بود که او آخرین شب پیش از سفرش باقی گذاشته بود. فقط همه جا بوی غبار، بوی گمشدگی و بوی دلتنگی میداد. اساس خانه با او حرف نمیزدند، به او گریه میکردند پنجره ها را گشود پرده ها را یکسوز زد خاک ها را گرفت همه خانه را به کمک دوستانش تمیز کرد قابل زندگی ساخت اما غروب که از حمام برگشت و تنها توی خانه بود در اتاق نشیمن پای تمثال بزرگ اشو نشست گریه کرد تمثال بزرگ و قاب شده ای که مادرش هر روز آن را با گلهای یاس و سوسن سفید نخ شده آزین می بست. جاوید به خانه بازگشته بود اما زندگی به او باز نمیگشت. زندگی او با مرگ خانوادش و چیزهایی درون جسم و روان خودش مرده بود. پس از نیایش واپسین در آتش کده به اصرار دستور مهر و به منزل پسر امویش رفت و برای نخستین بار پس از روز مراسم صدر پوشان پوران را دید، دیداری که او مایل به آن نبود، پوران بزرگ شده خانومی می شده بود، با پیراهن بلند خاکستری بی آستین، رو صورتی، چادر بلند سفید، چهره سفید بی آرایش و چشمان منتظر بالای پله های صفرخانه به او سلام کرد. جاوید به سادگی با نگاهی که از ادب و از مهر او بود، جواب سلام او را داد، و از اینکه میدید میتوانست تا این حد در مقابل پوران آرام باشد در آسودگی شگرفی قرار گرفت سالهای رنج و مبارزه و سرانجام پیروزی او بر ملک آرا به روح او ژرفنا و کرانه های بردباری بیشتری داده بود که حدسش را نمیزد طی دو ماه بعد سفری به کرمان رفت و از خواهرش و بچه های او دیدن کرد پس از بازگشت به یزد کارها و املاک پدرش را راست و ریس کرد. باغهای میوه و دکان قدیمی پدرش را که به دست یکی از پسر اموهایش گرندانده میشد، برای همیشه به او واگذار کرد. در دیدارهای کوتاهش با پوران همچنین تیه درد دلهایی که با دستور مهروند کرد به آنها گفت گرچه او زن ندارد و کسی را هم جز پوران هرگز نخواسته اما ازدواج او با پوران یا هر زن دیگر در این دنیا برای جاوید امکان پذیر نیست به آنها گفت در سالهای اقامتش در تهران زخمهای روحی و جسمی فراوان دیده است که مجبور است تنها بماند رای و ارادهش به یاری پروردگار این بود که باقی زندگی خودش را در آتش کده به فراگرفتن بیشتر و خدمت به دیانت زرتشتی بنماید. روز بعد از جشن مهرگان به پسر گفت مجبور است برای سرانجام دادن به کارها چند روزی به تهران برود. بار کوچکی برای سفر بست با همه خدا نگهدار کرد و به تهران بازگشت. شست و هفت صفحه سی و هجده. از راه اصفهان به تهران آمد. این جاده هرچه بود، از کوره راه کویر به بود و از اسفهان وسایل بیشتری به تهران میرفت. رفت. از یزد با دلیجان به اسفهان آمد و از آنجا با اتوبوس هایی که تازه راه انداخته بودند، همراه ده دوازده تا مسافر دیگر در عرض دو روز به تهران رسید. غروب بود که اتوبوس آنها را جلوی شمسال اماره در خیابان الناصریه جلوی گاراژی پیاده کرد. جاوید پیاده به سوی وزیر دفتر حرکت کرد، باز پاییز بود و شهر زیر نخستین بادهای سردی که از ها میوزید خابیده بود. برخلاف سفر پیش که به تهران آمده بود و سرگردان و خام و گم شده بود، امشب او با هدف بود، پخته بود، سوخته بود، خوب میدانست کجا میرود و میدانست چه میخواهد بکند، حسابش را کرد: امشب درست سه ماه و ده روز از روزی که ملک آرا را توی سرداب در مقبره کرده بود میگذشت. دیر وقت شب بود که به سر کوچه چاله‌سار رسید از پشت گذر مصطفی به سوی کوچه هایی که خوب می شناخت انداخت و بدون اینکه کسی او را ببیند از پشت تکیه گذر وزیر دفتر سر درآورد. اینکه از جلو باغ بزرگ ملک آرا و لابد از جلو پاسبان جلوه در رد نشود از پشت کوچه که منزل آیت الله لواسانی بود انداخت و از کنار خانه قرشی گذشت و آمد به نقطه ای که گوشه شمال غربی باغ ملک آرا با دیوار کوتاه شروع میشد. ماه بزرگ و روشن پاییزی بالای باغ میدرخشید. شاخه های درهم تنیده و خشکیده پیچ امین و دوله و یاس هنوز سر دیوارها ریخته بود. مانند تارهای انکبوت غولاسایی بود که سالها پیش مرده ولی کفر شوم آن هنوز به گردن کوچه آویخته باشد. چشمش به گوشه ای از دیوار باغ که خراب شده بود و آجرهایش ریخته بود افتاد. این گوشهای بود که نزدیک چهار ماه پیش آن شب ملک آرا از آنجا ماهرانه به باغ لغزیده بود و وارد شده بود جاوید از همین نقطه وارد شد زیر محتاب باغ متروک بدتر از سه ماه پیش خزان زده و رها شده بود حوز خشک و تهش ترک برداشته بود باقچه ها از علفهای هرزه برگهای ریخته و شاخههای شکسته پوشیده شده بودند فقط جوی جاری آب بود که مثل همیشه با صدای یک نواختش می گذشت. انگاری که ساعتها و روزهای ویرانی و مرگ ملک آرارا شمرده باشد. سایه وار و با نوک پا از میان باغ گذشت، پشت در بزرگ آمد، از لایه ترکهای جرز دیوار نگاه کرد، سایه پاسبان را دید که هنوز آن پشت ایستاده بود، با تفنگ و سرنیزه، و داش چوپوق میکشید پس ملک آرا هنوز فراری محسوب میشد و تحت تعقیب بود سراغ پله های زیرزمین مطبخ کهنه آمد در تاریکی پایین رفت چند دقیقه پای پله ها صبر کرد تا چشمانش به تاریکی عادت کند کاری که روزگاری در آن مهارت غریزی یافته بود از یک گوشه نمناک مطبخ چراغ بادی قدیمیش را در جای همیشگیش پیدا کرد. چراغ هنوز کمی نفت داشت. جاوید کبریت زد چراغ را روشن کرد. بعد آن را برداشت و به طرف آبنبار آمد. وقتی از دهلیز انباری از روی قبرهای پدر و مادرش پیش می رفت و به آبنبار کزایی نزدیک می شد تپشهای قلبش را به خوبی می شنید. دریچه آبانبار را باز کرد. نور چراغ را توی آبانبار انداخت. آب هنوز تا نزدیک لبه دریچه بود. برگشت و با قدمهای محکم از دهلیز برگشت تا به پاشیر مطبخ پای پله ها رسید. گونی پاره گیر آورد. آن را آورد به شیر آب بست و به آن آویزان کرد. شیر آبانبار را باز کرد و باز گذاشت. صدای خفه آب که به گونی می ریخت و از آن پایین می رفت و ته پاشیر توی چاهک می ریخت به سختی به گوش می رسید. سراغ دریچه آبنبار برگشت. چراغ به دست ایستاد و خالی شدن تجریجی آب را نگاه کرد و میدانست جریان کند و طولانی و سمجی را در پیش داشت. از فرصت استفاده کرد و برگشت توی مطبخ و از پیت نفتی قدیمی که اواخر اقامتش همیشه در آنجا نگه داشته بود چراغ بادی را دوباره از نفت پر کرد و برداشت برگشت آب به دریچه سرداب رسیده بود دریچه آهنی زنگ زده کم کم از زیر آب نمایان می شد جاوید ایستاد و نگاه کرد این چند ماه همیشه در حیرت این دریچه مانده بود. فکر کرده بود روزی که دوباره این دریچه را باز کند چه خواهد دید. با وجود اینکه به پیروزی خودش ایمان داشت اما هنوز دلش مثل بچه در تاریکی میترسید. او هفت سال با دروغها و فریبها و بدی عجیب و غریب و غیرمنتظره این مخلوقات زندگی کرده بود. و هنوز در این دقیقه آخر هم روح ترس خوردهش مطمئن نبود مگر اینکه با چشم خودش مرده های آنها را میدید تاریکی آب انبار و موج آب کسیف و بدبو باز احساس خفته را در او بر برمی‌انگیخت آب به کندی از زیر دریچه پایین می‌رفت فکر شبهایی بود که خودش از توی آب میزد میآمد می, می, آمد می رفت توی آن سرداب برای ملک آرا شام و عرق و روزنامه می برد. به این امید کفزانه را پیدا کند. لبهایش را گزید. هر شب از روی قبر پدر و مادرش می گذشت و برای قاتل آنها عرق و خوراک و تریاک و روزنامه می برد. به این امید که سنت و کار و آینی را که به او گفته بودند اجرا کند. فکر روزهای افتاد که لیلا هم از توی آب زده بود و پیش ملک آرا رفته بود. لیلا زن او پشت سر او به آغوش ملک آرا رفته بود. پیراهنش را و زیر را برای او کنده بود و در بقل او از جاوید بدی گفته بود و او را مسخره کرده بود. و دروغهایش را با دروغها و زشتیهای ملک آرا آمیخته بود بعد یاد صورت و ریش و سیبیل دراز ملک آرا و چشمهای درشت و مریض ملک آرا کلاه دراز ملک آرا می افتاد که جلو پدر و مادرش ایستاده بود و مرگ آنها را تماشا کرده بود یاد آخرین شبی افتاد که خودش پشت این دریچه ایستاده بود و شنیده بود که لیلا خواهر او را خفه کرده بود. لیلایی که هفت سال زن اومانده بود و او را فریب داده بود. هنوز احساسی برای هیچ کدام از آنها نداشت. احساسی برای هیچ جانوری مثل آنها نداشت. نه تنها احساس گناهی نمی کرد بلکه روحش از فکر پیروزی سرشار بود. بخشایش و محبتی برای آنها نداشت آنها باید از صحنه زمین پاک میشدند. وقتی چشمش به کف آب انبار افتاد که از زیر آب پیدا شده بود تکان خورد و به خودش آمد حتی چاقویی که آن روز ته آب انداخته بود هنوز آنجا بود زنگ زده و سیاه شده بود چراغ به دست وارد لجن و کسافت ته آب انبار شد به طرف دریچه پیش آمد جلوه دریچه ایستاد لولاهای دریچه را که پس از مدتها زیر آب ماندن سفت و زنگار خورده بود عقب کشید مطمئن بود که ملک آرا و لیلا چفت پشت دریچه را با آخرین تلاشهای خود باز کرده بودند و باز گذاشته بودند به هر حال در غیر این صورت هم دریچه برای جاوید مسئلهی نبود و از بیرون به کمک نوک یک بیل باز میشد. اما حدسش درست بود، دریچه از پشت باز بود، ها و های جاوید کافی بود که آن را باز کند، بوی مردار توی صورتش زد، آنجا بودند، دستمالی جلوی دماغش گرفت و از پله سردا پایین رفت و دریچه را بست، نش ملک آرا یک گوش دراز بود و پتویی روی آن کشیده شده بود، انگاری که او اول مرده باشد، و لیلا روی او را پوشانده باشد که لابوت چشم خودش به لاشه نیفتد. جاوید پتو را با نوک پایش عقب زد. ملک آرا بود. با صورتی که همکنون کلی فاسد و متلاشی شده بود. لیلا در گوشه دیگر چون زیر لحاف ملک آره مرده بود. صورت لاغر و خاکستری رنگ شده او هنوز کمی شکل اصلیش را داشت. با مقایسه با پس صورت ملک آرا، لیلا انگار دست کم یک ماه بعد از او مرده بود، اما مورچه و کرم و سوسک مقداری از پا و دست و بدن هر دو را خورده بودند. به فکرش رسید، نفت روی باقی مانده لاشه ها بریزد و آنها را بسوزاند، چون بد جوری بو کرده بودند و ممکن بود بوی آنها توی کوچه برود و همسایه ها را خبر کند. اما بعد صرف نظر کرد. اگر دریچه را بسته نگه می داشت، بوی گندشان برای خودشان می ماند. همانگونه که این چند وقت مانده بود. و آتش را که مقدس بود نباید ناپاک کرد. یاد حرف عمویش افتاد. مرده را بگذار و برو. نگاه کرد. کیف ملک آرا کنار لاشه لیلا بود. کیف را باز کرد و نگاه کرد. همه چیزهایی که او شب اول در آن دیده بود هنوز سر جایش بود به استثنای مقدار زیادی از طلا و جواهرات که به سر و گردن و دست لیلا بود مقداریش هم توی دستمال ابریشمی بزرگی کنار دست لیلا لیلا ظاهرا ملک آرا را هم پس از مرگش لخت کرده بود چون انگشترها ساعت و قوطی سیگار طلای ملک آرا هم توی دستمال لیلا بود جاوید آنها را برداشت و توی کیف ملک آرا ریخت حتی طلا و جواهرات میراث دزدی لیلا را هم از او جدا کرد در کیف گذاشت. لیلا نه به آنها احتیاج داشت نه برازندهش بود. هفتیر ملک آرا را از توی کیف برداشت دستش گرفت. متفکرانه به آن نگاه کرد. هفتیری بود که ملک آرا آن شب اول با دروغ و خطعه چند دقیقه توی دست او گذاشته بود. که یا مرا بکش یا برای باز یافتن به من کمک کن. جاوید آن را به طرف اسکلت ملک آرا نشانه گرفت. ماشه را کشید. تیری شلیک نشد. هفتیر خالی بود. جاوید آن را توی سر ملک آرا انداخت. کیف و شمشیر ملک آرا را برداشت. آخرین نگاه خود را به آنها انداخت. از سرداب بیرون آمد. دریچه را برای آخرین بار بست. لولاهای سرداب را هم برای آخرین بار کشید. آمد برای آخرین بار نیز. بالای نقطه ای از انباری که پدر و مادرش آنجا دفن بودند ایستاد. آخرین فراورته نیایش مردگان را برای آنها خواند. به امید دیدار مادر جان، به امید دیدار پدر، بعد افزود، خیالت راحت باشد بابا، من پول آخرین صندوق های بار و خوشکباری را که آورده بودی از ملک آرا گرفتم. از زیرزمین بیرون آمد که دیگر هرگز در عمرش پا توی هیچ زیرزمینی نگذارد و وقت حرکت بود. شست صفحه سی از زیر زمین بیرون آمد. آب را برای آخرین بار آب انداخت. گوشه باغ نشست. برای آخرین بار در این مرحله برای سپید دم صبر کرد. در نخستین نورهای روز پاشد. آرام و بی صدا توی جوی آب شستشو کرد. ایستاد نیایش کرد. هنوز آفتاب نزده بود که آهسته از تاریکی دالان به سوی حیات بیرونی رفت. میخواست ببیند شاهباجی هنوز هست یا او هم از این خانه رفته است. از دور دود سماوری از کنار اتاق شاهباجی دید. کیف و بخجه خودش را گوشه دالان گذاشت و آمد. در اتاق سابق او را هم قفل و محرموم دولتی زده بود. شاهباجی وسط چادر و روبنده سر نماز بود. جاوید صرفه ای کرد آمد جلوی درگاهی اتاقش. او را صدا کرد. گوشه ای نشست. به زودی شاهباجی سراسیمه چند تا الله اکبر گفت. تندی نمازش را شکست جلو آمد. از پشت در نیمه باز گفت اینجا چه کار می کنی پسر؟ جاوید گفت آمدم با تو خدا نگهدار کنم. شاهباجی گفت یا عبالفض پناه بر خدا جاوید گفت و یک امانتی هم برای تو دارم دست کرد دسته ای اسکناس از جیبش درآورد. شاهباجی پولها را ندید از سوراخ کوچک توی چادر روی صورتش گفت از کجا آمدی که نگرفتند؟ جاوید صرفهی کرد و پرسید نگرفتند یعنی چه؟ شاهباجی گفت یه ماه که امنیه چیها دنبال تو هم هستند دنبال من چه کار داشتند شاهباجی گفت چه میدونم میگفتند میخواستن تو رو هم ببرن کمیسری و میخواستن حرف بپرسن میگفتم فهمیدن که تو میدونستی ملک آرا کجاست میگفتن تو هر روز تریاک و دوا از جهوده میخرریی واسه شازده میبردی از من و از همه اهل محل پرسیدن پسر زرتشتیه کجا رفته؟ خب الحمدلله ما دروغی گفتیم رفته خوراسون پهلو زنش. جاوید سرش را تکان داد. شاهباجی گفت اما انگار فهمیدن که تو رفتی. نمیدونم دونم هر جا رفته بودی. با دست شاهباجی را ساکت کرد. پرسید پس برای این است که در اتاق سابق مرا قفل و موم کردند؟ شاهباجی گفت، پس چی؟ به حیکل چادرپیج شده شاهباجی نگاه کرد، فهمید دیگر نمی تواند در اینجا بماند یا دیده شود، حتی صدای شاهباجی هم از ترس می لرزید. جاوید گفت، شاهباجی نترس، من دیشب آمدم زود هم بر می گردم. بیا این پولها را بگیر، این مال توست، اما به هیچ کس نگو آنها را از کجا آوردی؟ وگرنه با عذیت و آزار روزت را سیاه می کنند. فهمیدی؟ شاهباجی پولها را گرفت. جاوید هرگز شاهباجی را ندیده بود. برای او شاهباجی انسانی بود. پنهان و گم شده وسط یک چادر نماز. صدای شاهباجی پرسید. این همه پول را کی داده؟ پول حلاله؟ جاوید نمی جوابش را بدهد. گفت. برو یک خانه برای خودت بخر، زندگی کن، هر کاری دوست داری بکن، اما زندگی بکن، این پول از شیر مادرت هم حلال تر است. شاهباجی گفت باشه، خیر ببینی، نمیگم کی داده، میگم خدا داده، به همه میگم حاجت میخواستم، خواب حضرت فاطمه رو دیدم، صبح پا شدم دیدم، زیر متکام یه مشت پوله که اون ملبنین فرست داده. جاوید گفت خوب و پاک زندگی کن شاهباجی لازم نیست دروغ سر هم کنی، فکر کن از قدیم داشتی، فکر کن مواجب این همه سالها تو جمع کردی، شاهباجی گفت، وا، خب آره، جاوید سرش را برگرداند و حیات و در کوچه را نگاه کرد، به آنچه شاه باجی در امنیها و گرفتن او گفته بود فکر کرد، از اینکه او هم در تعقیب و دستگیری بود در نگرانی ریشهدار و تازه ای افتاد. او البته دو نفر را کشته بود و نمیدانست امنیه ها او را برای بازجویی راجب به مخفیگاه ملک آرا می‌خواستند یا اتهاام دیگری هم بود. اگر دیشب آخر شب که از راه رسیده بود به جای اینکه از دیوار باغ وارد شود و از راه عادی در کوچه آمده بود، پاسبان کشیک جلو در باغ کلابوط او را می او را میدید چطور میشد گفت: شاهباجی گوش کن: من نمیدانستم که امنی چیها ها مرا می خواهند. هنوز هم نمیفهمم برای چه مرا می خواهند. اما من امروز کار دارم خیلی کار دارم تو باید به من کمک کنی شاهباجی توی چادرش صرفه کرد: وای چه کمکی؟ فقط باید به هیچکس نگویی که مرا دیدی. هیچی نگو. شاهباجی پرسید. تو کار خلافی که نکردی. مثل پسرهای قلومعلی چاقوکشی چیزی که نکردی. جاوید گفت. نه من چاقوکشی نکردم. تو که میدانی من بدکار نیستم. بعد پرسید. شاهباجی گوش کن. هنوز آن راه زیرزمینی به حیات سرای خانم را باز نگه داشتند؟ یا بستند؟ شاهباجی گفت چرا؟ نه بستند دیوار کشیدند جاوید گفت پس از این حیات به آن حیات دیگر راهی نیست شاهباجی گفت نه راهی نیست جاوید میخواست سرگی خانم را ببیند و میخواست چندین نفر دیگر را هم ببیند و سهم پول و زندگیشان را به آنها بپردازد اما امروز برایش مقدور نبود و نمیخواست پیش شاهباجی بماند نمیخواست برای او دردسری درست کند به هر حال تا شب هم نمیتوانست از خانه بیرون برود گفت شاهباجی خدا نگهدار به هیچکس کس هیچی نگو و راستی وقت حرکت بود شست و نه صفحه سیصد و بیست و شش در پشت بام را کمی باز کرد، نگاه کرد، از اینجا تکیه و سر و سرکله پاسبان جلو در باغ را میدید. به تندی از روی پشت بام های کاهگلی پوسیده دولا, دولا دولا دوید و به پشت بام منزل سرعی خانم خزید. اینجا یک گوشه اتاقکی بود که در بنایی چند سال پیش برای نگه داشتن ها و پشه بند ها ساخته بودند. جاوید به درون اتاقک پناه برد. در آن را نیمه باز نگه داشت. از اینجا نصف حیات سرعی خانم و در ورودی را خوب می دید. نفس راحتی کشید و نشست. تا شب جای ایمنی برای مخفی شدن داشت. باز به بخت و شانس تهران آمدن خودش دشنام داد، هر وقت می آمد همان روز اول باید زندانی می شود. یا از دست زندان خودش را زندانی می کرد، کاش می توانست بفهمد پلیس با او چه کار دارد. ولی با کارهایی که کرده بود و با کارهایی که میخواست بکند و با آن پلیس و دستگاهی که نمیشه ناخت نمیتوانست کیف ملک آرا را دستش بگیرد. برود کلانتری بگوید من جاوید پور فیروزم با من چه فرمایشی داشتید؟ نشست و فکر کرد که با این همه پول و گنج باید در این دنیا در شهری که دیگر جایش نبود یا حتی در کشوری که دیگر در آن ایمن نبود چه کار کند روز بالا آمد و او نشست نگاه کرد صبر کرد فکر کرد زیر چشمش اتاق که کهنه گذشتهاش را در کنار باغ میدید که نوکر تازه عبدالرسول و زن و بچهش اشغال کرده بودند اتاقکی که خودش شش هفت سال کم و بیش در آن زندگی کرده بود یا بردگی کرده بود خفت کشیده بود و آنها مردی او و بهترین سالهای زندگی او را کشته بودند و از بین برده بودند سرتاسر سر محله را نگاه کرد جلوه چشمش پشت بامهای های کاهگلی پست و هشل هفت خانه های دیگر محله را و سقف های گمبدوار کاهگلی بین از مقواره بازارچه ها را می دید که مانند چرت رخبتناک و دیوانهی همه جا ولو بودند. کمی دورتر گمبد و گلدسته های مسجد سید نصردین را هم می دید که با آیه های عربی و کوفیش خوابالود نشسته بود. نشست و نگاه کرد و فکر کرد. به زندگی خودش در اینجا و به آینده خودش فکر کرد. اینجا حرج بود، جای او نبود. اما کجا می توانست برود؟ یزد برایش امن بود؟ آنجا هم بیشک با وضع محکم پلیس و امنیت و ارتباطات فعلی برای جاوید امن و درست نبود. یک تلگراف مایش بود که او را دستگیر کنند.